ورود و صد سلام به یاران همیشگی رادیو البورس عناوین خبری مربوط به پناهندگان در هفته که گذشت رو به سهم شما میرسونم دولت فدرال و نمایندگان ایالت‌های آلمان روز پنجشنبه در برلین بر سر بازگرداندن پناهجویی که تقاضای پناهندگیشان رد شده به توافق رسیدند به این ترتیب آلمان که دو تی دو سال گذشته یکی از کشورهایی که میزبان بیشترین تعداد پناهجو بوده، رسما پایان این سیاست را اعلام کرده و روند بازگرداندن شمار زیادی از مهاجران به ویژه پناهجویان افغانستانی با صورتی بیشتری دنبال می شود. آنگرا ملکر صدر سادرزم آلمان، که به لحاظ سیاستهای مهاجرتیش مدتهاست هدف انتقادهای داخلی بوده در زمینه این توافق چنین گفت: «ما فکر می‌کنیم که این تصمیم ضروری است.» و به منظور حفظ ظرفیت پذیرش پناهجو در کشورمان و تداوم کمک رسانی به آنهایی که نیازمند، باید به توافق حاصل عمل کنند. در سال گذشته میلادی نزدیک به 80 هزار پناهجود داوطلبانه یا به اجبار از آلمان به کشورهای مبداشان بازگردانده شدند و در پی توافق روز پنج شنبه و با همکاری بیشتر میان دولت فدرال و دولتهای محلی این روند تسریع شود. وزیر کشور آلمان در این زمینه گفت همه از زیر بار مسئولیت خانه شانه خالی می‌کنند دولت فدرال گفت که دولت دولت‌های محلی ایالت ها باید اقدامات بیشتری انجام دهند و آنها هم گفتند که دولت فدرال باید تلاش بیشتری انجام دهند. فکر می‌کنم باید به این وضعیت خاتمه داد و همه باید مسئولیت پذیر باشند از سال 2015 تا کنون بیش از یک میلیون پناهجو از کشورهایی چون سوریه، عراق، افغانستان و ایرهتره تقاضای پناهندگی خود را در آلمان به سمت رساندند. بازگرداندن پناهجوان افغانستانی به کشورشان در حالی با جدیت دنبال می شود که به گزارش سازمان ملل سال 2016 مرگبارترین سال برای غیر نظامیان در افغانستان از زمان سقوط طالبان بوده است بزرگترین اردوگاه پناهجویان جهان در کنیا در پی رأی دادگاهی در این کشور تعطیل نخواهد شد. بر اساس حکم دادگاه عالی، دولت کنیا نمیتواند با تعطیلی این اردوگاه بیش از 200 هزار پناهجو را به کشور جنگ زده سومالی بازگرداند. پیشتر این نگرانی وجود داشت که در پی دستور وزارت امنیت داخلی کنیا این پناهجویان تا پایان ماه مه میلادی از دادا آب مجبور به بازگشت شوند اریک کرایتر، سخنگوی دولت کنیا میگوید با عنوان دولتی که مسئولیت اصلی آن درباره مردم کنیاست اما احساس میکنیم که این تصمیم باید لغو شود. میشل کاگاری معاون مسئول منطقهای سازمان عفه بین نیز به خبرنگاران گفت مسیری که دولت کنیا برای مواجهه با مس... مسائل پیموده با, با توجه به استاندارد های امنیتی بوده است و فرض بر آن است در جایی که ممکن است نگرانی از اعطای اونبای پناهندگی برای کسی وجود داشته باشد اعمال شود به گفته قاضی دادگاه عالی تصمیم به تعطیلی اردوگاه پناهجویان مخالف قانون اساسی و پیمان های بین المللی است و نمیتوان پناهجویان را به مناطق دچار درگیری بازپس فرستاد توافق آلمان با تونس در قبال بازگشت پناچوان تونس برای سیاست پناهندگی سردرزم آلمان مهم است میکر خواستار اخراج سریعتر پناهجویان پناچوان رد شده و ایجاد صبات در منطقه است به این منظور او در برلین با یوسف شاهد نخست وزیر تونس مذاکره کرد سردرزم آلمان روی اقدام داوطلبانه تونس حساب میکند این امر موضوع مرکزیه پیمان جدید پناهجویان با تونس است که آنکرامرکر از آن حمایت می کند. صدرمزم آلمان روز سه شنبه بعد از نشستش با یوسف شاهد نخست وزیر تونس در برلین گفت که تونسی هایی که بازگشتشان حتمیست باید هرچه سریعتر به این کشور شمال آفریقا بازگشت داده شوند. و آخرین خبر با روی کار آمدن دولت ترامپ رایت جنبور آمریکا، آمار مهاجرانی که در آمریکا آینده‌ای برای خود نمی‌بینند و روانه همسایه شمالی کانادا می‌شوند، افشا یافته است. یکی از آنها محمد، مهاجر سومالیایی است که خبرنگار کانادایی در جاده‌ای پوشیده از برف در استان مرزی منیتوبا با او برخورد کرده. در حالی که خسر راهی دراز است. و گسنگ... گرسنگی امان او را بریده است محمد میگوید بعد از 21 ساعت پیاده روی به این منطقه رسیده که نمی داند دقیقا کجاست پس از دقایقی پلیس کانادا از را می رسد و محمد را تحویل میگیرد گیرد از این دست کم نیستند مهاجر دیگری از غنا هشت کشور اکوادور کولومبیا پاناما کاستاریکا، نیکارگوه هندراس گوانتاما را و سرخط و سراخر مکزیک را پشت سر گذاشته بود تا خود را به آمریکا برساند اما به با آغاز به دولت جدید مهاجر قنایی هم چاره‌ای نداشت جز آنکه مسیر سرزمین های سرد شمالی را در پیش بگیرد به رغم لغو سفر فرمان مهاجرتی جنجال برانگیز ترامپ توسط دستگاه غذایی آمریكا نگرانی مهاجران نسبت به سرنوشتشان همچنان ادامه دارد لباتون خندون دلاتون شات